بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله عبدالعالمین و صل الله علی علیه رسول الله و آله طیبین و طاجرین و معصومین و لعدد داریمت و عدادیم حجمعین اللهم و فرمجمعی مشهرین و رحمتی که و رحمتی که و رحمتی رحمتی ارز حضور آیان که بحث راجب اینه از که آیا قیبت جزء کبائر یا نه مرموم شیخ همساری سه چهار سطح نیجا نمیشتر رو اکتفای کردن شما مرموم استاد یه برداری تفصیل صحبت کردن گفتیم عباره که بوده بشن. البته اگر یاد آقایم باشه همین تازگی نسبتا تو بحث سه و هم باز یک تحروزی راجع به قیبت کردیم که آیا سه جزء کبائر هست یا نه و اون بیشتر سر این بود که در روایات احل سنت یه مشهوری دارند از عبیب وریبه با بو عنوان از سبه الموبغات هفت تا گناهی که موبه یعنی مهرک ای اهلت هستن در اونجا سهرم آمده در اون سبه موبقات سهر ذکر شده در روایات اصحاب ما توی بعضی از مطرون سهر آمده یه مطمئن مشهور نیامده. این بیه مناسر اونجا این صحبتی راجع به کبارش شد در اونجا حالا چون اینجا مرمو استاد اصلا برد بحث کبیره شدن و برد هم تطریقش در باب به ساقی برد ما یه مقدار کلامی اینجا این نگه حالا اونجا هم متحرس شدیم ایشون ترمودن توضیح و مسئله الانه به اجمال شهر بین فوقها ها از کردیم این مسئله کبیر و سقیره به خاطر این که در قرآن ذکر شده فقط بین فقها نیست به این مفسرین هم آمده و چون این منتهی شد به مسئله کلامی ایمان و کفر و مسئله کلامی ایمان و کفر توی خونریزی ها شد دیگه قصه از این حدش گذشت بحثی نبود که ما یه بوشه زیزنی بوشیم بحثی و کبیر رو رفت تو جانه و خونه ها به دوبار باشیم مثل ایمان و کفر که کباره اونجا به کفر میشن یا نه و مرتقب کبیه کبیه کافر از یا کافر نیست این توی مباحث کلامی هم آمد تو مباحث فقیه هم آمد تو مباحث تفسیری هم این بحث وارد شده بله بعد ایشون میگه بختر کلمات رو چونکه تفسیر اون که و ما الانه نه بنده ایم کنون جمعا بنده خب این هست، البته این مقداری که ایشون می فهمن. نیست اما گفته شده و اینشالله عرض می یکی می اصلا این ایشون شدار می که علم... کلمات اصحاب بین فقا شد مثل مراده ایشون فقاهای ما باشه اینشالله من این مقدار براتون مصدر رو بیخونم این مقلب از زمان صحابه شروع شده این یکی از موارث ریشدار در دنیای اسلام اصلا یعنی این مطلب که اصلا سقیر و کبیره داریم یا نه و علا تقدیری که باشه میعیار کبیره چیه؟ این شایده ارزی نپنیم از صحابه اختلاف شده این اختلاف خیال نبرم باید مثلا توی فوقاهای شیعه یا روایات ماست این از خدیمه و بعد از امسله رو خرم کردن البته پیش ما واضح نیست در کتب اهل سرنه نامده مثلا نقل کردن که اختلاف این از اده از امیر و مانیش دونن که شروع خرم روزه نیست از کلم ها به نه بعض وقتا به نهباس این درست نیست شروع خرم روزه کبائل یعنی ببیند از همان اصل صحابه و که داره این که کبیر یعنی که از تأثیر داریم اصل صحابه ت لذا وقتی مسئله بر همیشه عرض کردن وقتی مسئله میره اصل با به اصل استحابه دیگه باید خیلی افر به رو باز بکنید یعنی باید خودتون رو یک جد قرآنی که همه ما علاها زمان رسولا هستیم و, و این بعدشم مبنایمان متله شدید که این چرا باید این مسئله از اونجا شروع بشه مثلا اگر این اصل قرآنی داره و قرآن هم به لسان عربی مبین، چرا باید کلماتو برآوری؟ باید که تسلی داره، تشنگو که با ارماتونها نه اند، نه که فرقان کرد سعی آفرم. آیات دوست، آیات مدنیه، یعنی آیاتی که یه توصیه ذهنی بوده کاملا باز هم مثل مکه و مثلا مسلمان در به شابوش خب خواهی خایید باید, باید ببینیم چرا آیا بیشتر دست به معلو بزنیم که اختلاف هست؟ ما این دست به الله بزنیم. لکن اون رو الان جای عهد صحابه و برخورد مستقیم با علی مبارکه و ان شاء الله کرد یکی از نکاتش این بوده که بعد از صحابه از رسول الله تفسیر کتب رو بردن از اینا هم خودشون استظهار کردن با این ریشه ها رو اگر نگاه بکنیم اینه البته من شاید به مقدار در ریشه ها فرصت نشه اینجوری بحثش بشه چون خیلی طولانی میشه من فقط اشاره کردم مثلا فرض کنید کسی خواست سوالی بنویسه در تحریر کبائر و صغائر و جمع احوال و خصوصیات کار خوبی این ریشه ها فقط در روایات ما یا و علمایم ما نیست روشن شد این بیشه خیلی قضیه از عند صحابه شروع شده از خود پیغمبر در تفسیر کبائر روایت شده باز صحابه زابیدی این ایشون نقل کرد ابن عباس هم نقلش اون میخوان در از این شاده برای زابطه و غیر زابطه ایشون میهه تقییل این پر کبیره کل و غم تبعه به عذاب کتاب عزیز کتاب عزیز بر روم اما به ها در قول الان مشهور این شاده از های کلی از زمان صحابشون شده این تازیر نیش یاد میشون که مشهور که آقای ما خیلی بردست و آقای ما مطرحه وخیل کل و زم بردت مقدس علی حبده اینم گفته این شد نماساوه نمیشن. هر گناهی که در شریعت مقدس حد برای او هست این جزء کبابیم. اینم نه تنی اینم از ذکر صحابه آمده. و وقتی که کرده زن به وقت شارل مقدس علیه آن او سر رهیقیه بر او سر رهیشون شارل سر رهیقیه بر وعی از وعی آتش باشه این یکی از این دو تاری. یعنی یا تا به وصلا تسری با آتش و عذاب باشه یا حد باشه این هم از صحابه نقل شده این مطلب این عنوان اون عباداتی که فقط حد دادش یا آتش عذاب در قرآن باشه یا بسا جایی بشه؟ از این طور رو به وصلا حد در جای باشه و دلیل کل معصیت اصول بدلتت اسماء فاعل ربذیک الان در مرکز کیسی و دلیل کل با امری دل با حرمت به دلیل قاطع فاوید در کبار شبیه این هم نره شده که هر چیزی که درش تشکیل شده عذاب های زیاد نه نام تشکیل شده ایشون به دیگه قاسیه گرفتن شاید مرادشون این باشه بعد نه بعد آوردن کل کلما ایشون کلما متصر باشه کلما تاوید علیه توقع بادن شدیدن این هم از این هم از مصابه هم اگر این درست باشیم خوب دقت بکنیم توقع در حلیق توقع دن شدیدن تو قیبت خیلی توقع هست چون در مورد قیبت تصریح با آتش نشده در مورد قیبت هر زب نشده خوب دقیق کنیم من آن دارم میخونم پرد اینجا بخواستم اینه دوستر رو احز بکنم که در مورد قیبت تو قرع در حلیق توقع شدیدن فیل کتاب و سنه نفهم نرکبات این, این تفسیر تفسیرم گفته شده تبری این تفسیر غیبت میشه از کبایر چون کبایر هد غیبت هد نداره نه هزار و اونم هفه اونها ماد ازم اول سرکه نگاه میکنه و هزار و دو هزار و بنار هزار بعد از بگم داری نداره بعد هدم که نداره لکن این نقطه داره سهم مال و این نر کبایر تنافر اداله دو نسرای این افتاقی عبارت مشروعی این از صحابه هم نمو شده. خیلی مشهور بارد. لا کبیرت محل استقفار ولا سقیرت محل اصرار. دقیقا این جزه کلمات مثالیست که اصحابه شده. یعنی اگر شما در کبیرت تا استقفار نکنید موضوع به ادارت. اما صغیره خودش نیست اگر اصرار بکنیم. اگر اصرار کردید موضوع به ادارتیم. اسیان پس باشه مثلا ریشتراشی ادا ترتیب قرآن کرد ازش دو این حرمت نداره یعنی موظفه با ادارت میده حرمت منافی اما اگر اصلاح کرد این مکلفی که ایشون گفته ان الکوارشون اصل عدالت این عبارتی است که از صحابه هم منع شده لا کبیره معنا و لا محل اسران. به نظر من بنا زمانه حواسه شده از این کلمات ها در کتاب این از ابن عباس دارده و تحقیق ما رکمه ها و فیلمه اداره من کتاب سرات من معاصی ها کمی روزون این مدنم ها اصحابا شده که می آک و سبیر المعاصی و عصیت خدا همش کمی از دقیق این بحثی که لاعقل تو مرامنه هست از درس هایی روی در دنیای اسلامه اینجور نیست داره ما در تحمل 15 مثلا تو جهب گیر کردیم و امخانه بعضه ها اتفای من بعضه هر آخر کشه که بله از این فعنه ها من اعظم المعاسی و قتل نفوس مفترمه فعنه و اعظم من بقیت سنو و ها کذا و اینما اصل قتل کبیر از و علیه ها به تشکیل الاسطلاف مراتبه ها شدتا و زحفا و حلیه فلا وجهل نظافی امنال بیوته منال امن امنال خب این فایده داره که اشد هست از بقیه یا ادالت قبول اما به لحاظت اشدیت هر این خب بر حرف بلید نیستیم و اختار آمادر رحیه جمعون از اصحاب البته کردم این جمعون از اصحاب نیست سنی ها هم داره یعنی این تقسیم به کبیره و صغیره هم سنیه ها هم دارن شیعه هم داره؟ حتی از اصلاح از صحابه نبر شده. حالا من واضح وقتشی نبوده از یادم نبوده شده بر و ابن ادریسی کتاب شهاده من از سراخر درول اجماعه از کبن بخص و کبیره توی کتاب شهاده را آمده متعارمش اجاز. اما اصحاب متأخر و معاصم ما بعد از منحاج سالهی چون آقای حکیم منحاج ساله آقای حکیم, آقای حکیم،, آقای حکیم بعد از منحاج سالهی تو بحث اشتاعت تقلید رو الان بحث کبیر و رو توی بحث اشتاعت تقلید در اونجا به مناسب متعزید سوار و شد فیلم بعد ما نقل کلام شیف محسود از ظارفی امن از دنوب حلا قسم و کبائل همان که این مطلب رو از کتب اهل سنت گرفته، لکی این مطلب در روایات ما هم هست. کتب اهل سنت تو بحث شهادت بودن ایشونون در آورده. قال و هاذا القول نبي از ذهب الیله ها در کتاب این در کتاب مبسوط ترجمه ابن نذریه یعنی کتاب مبسوط و لا ذهب الی احد من الاسحار لانه هو لا سغائر اندناخ المعاصی الا بالاضافه او از اخر دلبز به نسبت متکزه در سرایش فیض و تو بحث اصول سرای خوبه به دلیلش شاید از اون بحث تقلیدی متعارف زمان خودش خارج بشه اما منسجم نیست کلماتش علایاهاله ماها در قول نزد بله. اصحاب ما در کتاب بحث شهادت این بحث شهادت رو از, از کتب بحث سنت گیرسه لکه این مسئله که ما صغیره داریم و کبیره داریم این ماشاءالله روایات داره این بحث یک دست نیست روایت فراوان هم داره بابی هم در مصادر در تعداد کوابل داره و چند تا روایش کاملا صحیحه بعضیش مشکل داره اما چند تا روایش کاملا صحیحه که دیگه ما اینجا متعرض نمیشیم حالا این مکلمی که خون فرمودن این نظر شخصی ابن عبریزه. این اینو نمیشه در اساس و من هون از زهن الاخبار الوارده فی عدل کبار خدا و فی شدن این لبیان ازمه بین ساحل زنون خیلی خوالا ترس کنم که کبیر و سرگیر در زیل آیه است که ظاهرش آیه است که بحث سقر و کبر نیسیه ظاهر آیه مبارک هم که اینه که سقاره و کفرات هم این تشنه و نکفر ما تنه این ظاهر آیه است. اینو ها باید داشت روشید. من روایات هم در تفصیل آیه است. بله. لحصر المعاصی به امور المعاصی بله. بیان ازمها من بین سائر زمون لحصر المعاصر کبیره به امور المذکوره. بله. و علیهی و فکر قولو تعالی این تشتن و کبار ما تنهانه هم خلاف ظاهره. نکفر هم کن سیاهات کن ظاهرش این طوره. بسیار و معنى اغظا هم ما ذكرنا خلاصانه از نضافه الفرم بين الكبائر و الصغائر فئن ذنوب كلها تذهب بالاذانه اون بحث دیگه‌یه اون تذکر دهنده اون ممکنه از یک ناظر به کسانی باشه که قائل هستند اداره جزء ملک است و با صغائر از دین نمی ره با کبائر است این یک دو ممکنه ناظر به این باشه که اگر کسی مرتکب عادل بود ما اداره چه احداث کردیم در جاده طبیعت در طریق مستقیم جاده شرمهر جاده مستقیم هست لكن یه روزی صحیره ی دیدیم دیدی نظر عیدی به اجنبی کرد ببین به مجرد نظر عیدی و اجنبی اون آثاری که ما تا حالا بر اداره او بار میکردیم بار میکنیم اینطور نیست که در مران این بوده اینو داخل از آل کردن اگه گفتیم ما ادادت از بین نبیره از فرم باید به ملکه باشی نه مرادشون این بوده خوده پس بکنیم مراد چیه؟ شخص از چون از تردم یک مسئله که در سابق کاملا مطرح بود و حالا زمان ما گرام محضر نیست این بود که شهادت رو باید قدوی بود دادن وقتی یک دستگاه شبیه این که ما داریم محضر مثلا اصدواج و طلاق و مال سمت همدار و اون زمان هم یک محاضر خاص داشتن با عنوان معدل و کان معدل هم و حتی تیما بعد عدل بشن بود کان عدل هم یعنی یا عدل شهود این رسلشون بود الان نیست تو زمان ما نیست ما الان محضریم این عنوان نداریم محضر ثبت نداری. همولار داریم ثبت همولار داریم محضر تعدیل نداریم و مثلا چون میرستن پیش قاضی دو نفر شهادت میداری این ملکون آغاست قاضی مروب این دو نفر شخص باید تعدیل بشن ما خیلی محصول صدور باید که هر در این قرار فران بده اردید در موقع اردید در اون زمان صفی... م... چیز اشتباهی بوده و کان معدلن عدلن این تعدیل شهود میکرده می‌رفته اونجا این کارش همی بوده اطلاع داشته شما ساکنه کدون من هستی؟ کی؟ شما رو بررسی بررس این معذرت میشن بله ما شهادت دیم. این این آوا هر دونه ها فلان افعال این شخصو که گفتن ایشون خنده درن این اسمش مکتب تعهید بود اساساً الان نیست اون شد دردی بود تاریخ داره رو این بحث این بود مثلا یکی ما دارن در تاریخ میگن فلان این اداته ثابت نبود چرا بابا من دلیل دو مال الهام میدوره اینو نوشته در بحث اگه دقت کرده باشید اما الانم داره جربه تری این جرم تردیبی در معالم ها مفصلی در کده به حال سر لذا اگر دقیق بکنی تو معالم هم داره که جرم لا یغ بلی الا به تفسیر این اشاره به همین بود یعنی اگر یکیسی رو جرم کرد و آده نیست با عادل تفسیر بوده چرا؟ چون میان دیدیم این ارده رو آمدن جرم کردن دیم مثال این فرس نیست گوه من دنبال اولا بود اولا دنبال, دنبال اولا بود رو که از ادالت رو اون مسئله مخالفت مروعت و مروعت و اخری درسوق امال همین بود روشن شد چیه بست؟ این بحث این بود که اگر شخصی در نماز جماعت میاد ظهور دارد تو رو بچه هم که از جیران سوال بکنه در رو در دولار نبیه بود امام میفرمان اگر میگرد ما از این گناه این هدین کلا من تو بر شهادتو این قبول میشه عدل. این بحث این بود که اگر یک کسی می آمده می گفتن آقای آدم به یک کسی با آمندی روی یک عجبیه نگاه کرد. این بحث نظر برشنبیه با ادارت منافیه است اصلا بحثت چی بود؟ بحث این بود این لازم نبود که ما منکم آدم باشیم که ادارت این تصبح وقت تو توفیق مشکل درست گفت این بحث که سبیره مزرده ادارتی یا نه پس ادانه همین ملکه ملکه هی اتا راسته خطا نفسانیه بحثای فرکتی رو با اینجا خلق کردن صحبت یعنی این بود وقتی میخواستن تعدیل بکنن اگر این مرتکب کبیره سوال میکنن کسی میگه بله من دوید درم قیبت میکنن این بحث من شد که اگر ثابت شد چند است سلام دارد ثابت شد قیبت کرده آیا این رو ما میتونیم تعدیل بکنیم اون مکاتبی، مكتبارا میتره میگه محضر. مزرعه، مزرعه های اون مؤدل میگه به فلانی شهادت داد که شما غیبت کردین، پس شما عادل نیستین. یا فلانی شهادت داد که شما دروغ گفتین. چون دروغ جز کبائره. خوب دقت کنین، یک بار هم دروغ از شما نریشه میشه شما عادل نیستین. اینا میادن در دادگاه مینشن اداره کیشان ثابت نیست، شما عادل نیست. پس که شما گفتن اگر سهیره منتقل شد آبا من دیدم تو بازار به یک خانوم نگاه هم کرد بودون اشکال نداره. لقدر همه جادش خقوبه نمازش و اینا این موزر نیست این چون سقادره انتشتنه بود کبادر ما تنهونه هم من از توست دارم این قصه چی بوده این قصه این بود انتشتنه بود کبادر ما تنهونه هم نکت دارن این سقادر رو حساب نکنه حس این مسئله که مزرده به اداره هستیانه ربطی به ملکه و بحث ملکه و بحث فلسفیش نداریده این بحثه این بود که اگر شخصی به حساب ظاهر سالم و آدم دیدیمون یک بار منتقل سقیل بله اگر دیدیم یکی سی گفت نا من تو یک روزی منم دیدم به نامحلی دیگه نگم منم دیدم که قبی معلوم تکرار میشه از میگوستم اگر تکناه شد این موزه رو به ادالت این آقا عدل نیست لا شکمت شهادت بود اما اگر یک بار نگاه کرده و از این لا تنظر رو ببسا... به عدالت. این ادالت هم خیلی رزیده صاحبه استداره ما بود که در باب همین این هر دیگاهی پیش میاد در مسائل منشأ مشکل میشه اینی که بیگم سهیره و درست هم هزه این مطلب درسته هیچی ملکه نداره که به تحریف ملکه بکنیم واسه این درست ندرست. ای ما درست بعد اشکارا دیگه ملکه وارد شده اگه سال اداره خانم شهر وقتی کردیم تو اخر مقاصد چارت شد همین گیر نگاه دیگه کردن برای که این تعبیر ملکه از زمان مثل معطلاب محط... شروع شد معطلام داشته باشه ملکه نفسانی راست این دلیل اینکه وقتی نداریم که یعنی ملکه ادالت یعنی استقامت بر جاده شرم و این استقامت با ارتکاب گناه از دهی و ولو سقیره باشه این خلاصه نظر بارد میرون باشه اینجا فلاش نبرای که فلاش نبرای که نزاق فلقه فلاش نبرای کلها تضر و رو به اداله و تنافی ها فلاش نبرای ادالتی یعنی اعتدار رو به جای همه که اینجا اعتدار که محروف در همین کتاب منهاج همیشون نویشتن ولی استقام در حاشه ولی لذا معروف شد دو تفسیر برای ادالت ادالت ملکه یا ادالت استقامه بر جاده شد کسان که آنها گفتن ادالت استقامه بر جاده شهر نظرشون این بود که نیمخواد ملکه باشه این باید استقامه داشته شد. راه راهی رو پیشار گفتر جام بده لذا اگر مرتقب سهیرم شد استقامه نداره پس این و استقامت على طريقه سید المرسل ولی شيء دیگه تو تعریف کرده مقرره خدای قوی در جایی که بر عهده خودشونه ولی استقامت علاجیات دست اشه و ارتکاب ایت معصیت و امکان از تو یون جبال از دین و خروج از استرات مستقیم لکن را که هر کند مول آن هر حق مولا بودن اش قبول نکرده کما ان در خروج جهت تکراری انحراف ان میگم صالب نیست ماده باشه دریم نداره خب ادلاش ادالت کسی که مثل در تق... امور تکنی عدی کسی که بر راه در راه تکلیفی داره درست حالا میخواد امور واقعی خیلی مهم باشه عمل کوچیک باشه خاری خوب خودش میاد اینا خلاو اعنی خلاو تکلیفی شرع هم همینطور فرق نمیکنه بر جاده هم اینطور نیست این مطلب یعنی <تصفيق> اگر کسی است به این شو قاعده نظرش میگه اگر شما دیدیم که شخصی نگاه کرده زن اجنبی این هم میشه فاسد پس سرش میگیره مورد. اونم میگه سر نه. اگر جه... بدم اجازه درسه یک بار نه چند بار. یک بار نگاه کرد به اجنبیه هر حرام انجام داده اما این صفت علالت رو از بین نمیبره. ما آثار علالت رو روشن تو مطلب چی هست؟ مطلب, مطلب درسته. همین مطلب درسته. یک چیزی به این کارش رو پس ما بگیم فرض بکنیم اداره این ملکه. آن خود با ما داریم اداره ملکه. راست میگم، داریم اداره ملکه. لذا چیزی هم اشاره کردم. این دوتا با همدیگه دیگه خلق نشه. ممکن ما بگیم صغیر مزرعه ادالت می در این حال هر اداره ملکه ندونی، رو قبول نداره. هر گناهی کرد، سریع این از اداره خارج می‌کنه. بره سریعه که لفت خالیس نمی کنه. مگه با اسرال؟ بره سرال اینکه که بره ممناه های رو که ما سریعه داشته باشیم سریعه توبه که نیاز نداره داره. شبا دیگه؟ مهمون که بگه توبه نیم کنه همون که گناه کرده. ایشون ظاهرش این طوره. بعد ایشون فولا سرولم نا اندر سراله لا تو مصله اداره. خب ایشون رو میگرد کن. اونی که مشکوله بین اسلام سنتن و شیعه اینه. و لذا عرض کردیم از از صحابه نرض از ابن عباس لا کبیره معنی استغفار و لا صغیرت معنی اصرار یعنی صغیره مادامی که اصرار نباشه صغیر است تا میشه ولا سغیرت محل اصرار بشه کبیره و لا صغیرت معنی اصرار یعنی اگر اصرار که صغیر نیست میشه کبیره ولی لا کبیره بدون اصرار صغیر در واقع ولی وصندنا النصباء و هم صحیح انصاف نظر صحیح است که صغائر لا تنافل اداره اگر کسی ادایش ثابت بود به منجرری که یک بار نظر به اجنبیه کرد از اداره خارج نمیشه به نژر به خلاف زنا قطعاً با یک بار از اداره خارج میشه این دو تا یعنی فقها روشن شد و رو مفصلی بحثشون این بود بین نظر و بین درسته جز زنا فهمون زیر ذاتش عرض کردی بله بازنما با یک از ادارات خارج میشه. اونم راحت تو میکنه. تو بردیشه. تو از خارج خارج میشه. نمیشه با سرتصم هم، نمیشه خارجش ادارتش ادارت خارج میشه. اما با نگاه که برایت تو خوام، این بودیم که خیلی بحث اولایییی گفت نبود. خیلی بحث مشکل نبود. <تصفح> لازم شد این نمیشه مورد اداره. خود من با اداره نیستم. اما اداره نیست. و رو صن نهاند سوقا لا آفر اداره لا ان من منن کواده. این حالا چشون بحث کویشه بر حالا وارد سو شدن که ع کبیره ليسله ها حقی از اون شردیه، لو پسهن ما، للم تفی ها،بلدلمراضبه ها ما و مننا هم این مطلب مطلب دقیقیه یا روغلی یا عفیشون در قرآان آمده، فقط ثابت بشه که پیغمبر حکم هر سر نفرموندن اگر ثابت نشد که پیغمبر یا علمه کردن مشکل چون هستی زرگرانه و خوبا زنبال حظیم شاره. خب این زنبال حظیم اندشاره شاره با مردم صحبت کرده از کرده همیشه دوام کلام به این است که تفهیم و تفهم درش باشه یعنی شاره وقتی فرمود کبائر اون چیزی رو که تکیم کرده شاهر باید ببینه ما هم تفهم میکنیم یعنی در باب کلام ظهور این نکته مهمه اینه ظهور من مثلا گفتم آب بیاری، فهمم آب چی؟ این من میفهمم آب چی کافی نیست رو دفت بکنیم من میفهمم آب چی کافی نیست قمامش میده که طرف مقابلم این معنا رو میفهمه من که یک ماده خاصی رو اعاله کردم اون طرفه برم همین مادر میفهمه یعنی هم باید تکلیف باشه هم تفاهم باشه اگر شاره قصد کرد گناه کبیره لکی وقتی پیغمبر اگر آیه بیاره میدونه مردم نمیفهمه خب خیلی تفاهم نمیشه که این ظهور منعقد نمیشه باید اون آیه مبارکه جزء معارف جزء لوحات و یورا ما که عزت و اوطاره بر نص الاکون همین الکبائر که شرک و زنا و قتل ما بله با نفس محلوم میشه لیکن مشکل اینه که از نفس ما انحساب نفهمیم اگر انحساب فهمیدیم دیگه غیر از نمیشه. میشه بله و غیرها مند کبار منصوصه و اخرا به طبق آده کتاب از سنت معتبره این رو همشه اوزی از کجا آوردیم و بعد به به این که من ارز کردم و ساده زدن به طرف تو با آثار کبیر تعلیم این نقطه دوم و سرون این هم باید برگرده نشاره یا باید بگیم این فهم ارفیست این تشترم و کباهر ما تناؤده این فهم ارفیست بله اون آیه فواهش فهم ارفی دیگه داره فواهش یعنی اموری که واضحه گناهانی که واضح و متفخش یعنی واضح و روشن و تخش اصلا خود کلمه فارشه اصلا تخشه کاملا پخشه یعنی مطلی شعرات از سره در لغت عرب معانی محسوسه زیر بنای معانی معبوله هستن یعنی معانی معبوله رو از معانی محسوسه گرسن خودت فخش پخش شدن یک این پخش شدن این وضوع. وقتی پس مراد وجوده. وجود کامل که این گناهه الا لمن لمن خیلی واضح نیست لمن گاهی چون علمه به مکان در لغت عرب نجده به مکان علمه به مکان ولیه نه نزد گام نمکه که توی بدن شما تو جسم شما روح شما پیدا میشه ورنش همینه اما متفقه شواهشونی که ظاهره یعنی ما باید ظواهره به علفاظ قرآنی رو هم نگاه بکنیم و فهم و عرفی این, این دوتا توقع داره به کتاب و سنه و وساله سزن به ترتبه با و کمیرته و رابر دل‌گیر از لواصط کفر و در شبائر این ایضا یکی پیشروض میشه و در میشه کباب هیتا حالا و فلسطه اشد به در قر و بر حسبه سنت معتبره از و انعقاده توحید هست و ب... البته توحید به آتش شده چون که تو بعد در روایات بود که کفره اما قبول نقدی سازه رو قابل نقدی و تضل را علا ظاله ریزن این روایات و این هستاست به نظر مهمون شیعه هم نمه داره تنسل در مقاسه و ولیهی و نهن ریوته به هر زن خیانه و هر زن و یدون علاقه و زیوته من بولو نبی فی وسیعه تیهی یا عوازه از مجال اما می توان با اون ایشون رو بودند و مناقشات کردند آخر هم تمثل بودند به حدیث و سی از اون نمیده حدیث خیلی عجیب از ایشان از این حدیث مخدوشه قطعا مخدوشه نه اینکه یعنی حیات مجموعیش که قطعا مجموعه نه اینکه احتمالاً محمد نبشن که یه بکنن اینطور نیستانشون کرد با این دورت به همدر درد دیرن بله و افشان سر رخی فیارشون فشتن افزاده که احتمال داره سر چیدی که او خواسته پهنهان ببونه مثلا مسئله مالی یا نسبتش با قیبت فرم کنه فشتن افزاده که فشتن مجلس تنه اشرا امتون بودتون چون برای که اینا ها زعیفت دست زرمت نیست اینا مکبولن ما همین اخیرا تو بحث اصول ارز کردیم روایاتی که درش حالت جهر هست اینا نمیشه شه بری ذی قسطرن مثلا ذل به انجواب دهبل عصاب پیدا میکنه قابل انجواب نیست خودش که ازلی باطل است وقتی نوسترن در ایزه علا کمرن قیدا کمیاتن بر روات اداره و حکم کواعر فرقی و تو اولا منه بن تکون شمیرتن و راس هست و این روات از زمان پیرنبر نعمل شده بلا که یعنی و علیه هم بلند هم مابرده با حاضر مزمون کلاه اون زنیف استن راسته خمدیم ارمان تو برسش خمدیم اونجا متعرض و همینجا متعرض شد که زر پستن و سانه نهاده این رویان همه بلداره که به ادنو غیبلا تخفر حتی, حتی این خران صاحبها و به خلاف احسان زنا زنا حکیب اون طرف نداره راسته این مطلب یعنی نقطه چی اینه و که در نتیجه هم خواهد آمد خدای خوی هم قبول نکرده استحلال از در غیبت و قبول هم اینجور دقیق واضحی حالا به هر حال اشدیت نه خاطر اشیدت گناه اشدیت خاطر این طرف غیبت داره زنا هم طرف نداره و یا اد و مانویعی رو ما کل واحده من از ظروفی جهت رو نمبروزیه لا تو جهتی غیره من اگر عجب فیکومی اشد من غیبی پیاده خصوصیه و امکان غیب و عشب من هم جهات این و اختلاف ما فیلاله که اختلاف ماست یعنی لازم نیست که از همه جهات از زنا عشب باشه. بگی این جهاتش که یک ترخیلی داری باید راضی بشه اما در اینجا زنا عشبه نه امهاد این اخبار ساله هستون لتعیید داره تعیید خوبه اما دلیل نبیشه اصلا همو تعییل ما رو مصنم هر بر با. در این در که دیگر اشد دوله نزدنا محشی رحمت الله علیه مقرر بله ایشون این روایت مصنم نیز حال یک ربایه رباد که هم قیبتش داری نهر حاقی حدیث مستنن مستنن. مستنن. از نهار روای از اون واحده منخوض من از خدا رو خوی نوردن در باشه مقرد نورده چپه از مطلع. نکرم اون وسیط نبیه از نه این کی این رو رو در اون وسیط نبیه از یک کسی رو آره. نمیدون که هم هست مرود دویستی یک سنده گردیه برایش درست کرد که مثلا ابوذر تو مسعود رو تفاهم بده اون روایت هم یا اباذر کرده یا اباذر یا ابوخضر ایشون وصیتو نبی لعیزر این ایشون نوشته این روایت همیشه از روایت وصیت نبی لعیزر برسه از اون واسه نبی از بابیه روایت گرفته اینو چه خیال دکتر از بگم ایشون خیال کردن چون ابوذر قدیمیه اینو در اون اون مثلا جلیه و روابطشون کاملا متقابل یعنی مثلا اگه یه انسان دیگه بخواد شروع کنه به عمل اون و ابو رب... الهدع آیشه اون روابطی که در اواز در کاملا مختلف و متناقض بعضیشون ازش معتبر و ازش غیر معتبر هیچ نداره پی کاراکتر می خوزه در مشکل میشه یکی بله. و یک لحظه روی موساله آنها هر بار روی آرزو با می‌ماند تا یک کنوسانابول در بیوتکه بیاد. فعلا 27 سالی اتمام داده است. ارناآو روی آرزو می‌کند که بیارد که این میشه به عنوان رابول و تعیید با این مطلب خیلی مشکله. و از که مرحوم شخ فرمان که بعد از معاصرین احساس که بیبر جزء چون در خود تون با آتش نیست در روایات معتبر هم نداری تویده با آتش بله از الزنا داریم از در رباب داریم این جور چیزا داریم که اینها سند واضحی نداره این را که به توجیه مثلا اگه بخوای وارد مطلب یعنی یک صحبتی راجع به کبیر اثرات عامه بعد توی تحقیق مثلا اونو زهر فراهم ان شاء این خلاصه نظر استاد راجع به اینجا بود و توضیح ها که با که توضیح بعدیشو بعد ازیده. و, و, و محمد و آله